تکایت، آوردند که فقیهی دختری داشت به قایت زشت رو، به حد زنان رسیده و با وجود جهاز و نعمت کسی در مناکهت او رقبت نمی نموند. زشت باشد دبیغی و دیبا که بود بر عروس نازیبا، فجمده به حکم ضرورت، عقد نکاحش با زریری ببستند، آوردند که حکیمی در آن تاریخ از سرندیب آمده بود که دیده نابینا روشن همین کرد، فقیه را گفتند، داماد را چرا علاج نکنی؟ گفت ترسم که بینا شود و دخترم را طلاق دهد، شوی زن زشت روی نابینا به.